طرف از دور گوشه بس یو نو بوده بشع خیلی خیلی بعد هیچ شروع نیست خاص فنن چی بعد یه پیشاوند یا پساوندی در الستایی داریم پاییتی پاییتی دو تا دو تا هست شیروش شیر. یکی پاییتی یعنی سر و پرور و سید و سالار و مولا که این در کلمه پادشاه است پادشاه یعنی رئیس شاه هست. در فارسی شده پاد یا به صورت پاد آمده پیشو، پادشاه یا به صورت پاد و پاد آمده فرساوند مثل که موبت، نوبت کو پاد که پاد یعنی رئیس کو یه پیتی دیگر هم داریم که اون هم شده پاد و پا و پد به معنی زد و حاله زهر، یعنی زد زهر پاسخ یعنی زد سخن پاد سخن سخن پاد سخن زد پاداش پاد دهشن یعنی زد در مقابل چیز رو در مقابل دادن شما یک کاری میکنید پاداش بتونه یعنی در مقابل اون کار خوب یه چیزی بتونه این پاد بهشت و هم پازر مثلا هست به صورت پت در کلمه پتیاره که پتیاره کلمه خیلی وحشتناکی نیست کلمه بیشاره بدنام شده پتیاره یعنی ضد یاری اولا برای مرد و زن میتونه کار بره دوباره که پتیاره یعنی دشمن یعنی ضد یاری پعیتی یاره ضد دشمه ضد یاری برای سپهوت یعنی فرمونده سپه کشید از سراپا یک سر دوال حالا خودومیتی یا نمیدونم سپهوت بریدان سر ناهمال همال و هامال یعنی همسر و همتراز برای این ناهمال یعنی که فکر بود گردد. پایندات کندو بسته، کار. یکی از راه هامی دوکیند از نکران نیت را متصل می‌کنم. زیر پا. این هاتا تاب، این هادرسیدی که گفتند که بدن امام مسیح نبازدی که کشتن و شاید کربلای رو روشون آستا هن. من نمیدونم آستا هن یا نه. می دونم که قضیه کلش نیم ساعت میتوند حد اقل سپاه از رو که بگیرید حد اقل اقل هزار با دو با هزار افتر. اینا به نوشتن دو, دو, دو باز به دلیل دن عدد اما آماده برای جنگ نبودن. دو سه تاشون مردم رشیدی بودن، مهمترینشون از سبأ بود، از خود عمار. دیگه باقی جاوون بودن، حتی الیکسر جاوون بود، 1300ش میگم بود. باقی دیگه هم تو اون قسم قلاه اینا این یه 1000 نفر جمعیت داشتن میان، در اینو نیم کرک و اون میکنن، تمومش میره به کارش. و یه بنده خدایی به هم ملاقای دربندی یک کتابی نوشتران سعادت ناصریه به نام ناصری این در اونجا ثابت میکنه که روز عاشورا هفته دو ساعت روزشا نشبشیم هفته دو ساعت اینه میگه که شما که این همه احادیس این همه خبر خوندین امام انقلی خوش که تا زانوی عصبش خون اومد از درباست نگم اینو اونو, اونو, اونو و اون و اون اون, اون اون کشت و قاسم اون کرد و اون اینکه اون کرد و اون کرد نگم حره ابن یزید اون کرد شما یعنی میگیم که اینا هیچ خودم نیم ساعت هم جنگ نکردن هر نفر اینا نیم ساعتم که جنگ کرده باشن میشه دو تا نیم ساعت درسته؟ باید هم میدونیم که زور آشورا قضیه خط قرار وقتی از صبح تا ظهرش هفت روز تا نیم ساعت یعنی 36 ساعت بشه 3 ساعت هم بعد از میشه مشخص باشه اما اگر اشکال دارید در این که روز اینقدر نمیشه اونم که جوابش روشنه مگه برای حضرت یوشع در جبعون دهان نکردن که خدا آفتاب رو نگه داشت ردشم تا این جنگش جنگ بشه مگه برای علی بن ابی طالب نگفتن که پیغمبر دها کرد روز طولانی شد و خورشید وایستاد اون نخورد از سر جاش تا وقتی که جنگ تموم بشه اون روز هم همینطور این روز ادامه داشته حال بلی این که این مسئله به این صورت ارسان بعد تازماندازه بشه که بیان و برن و هفت تا تازن و اینا اصلا این تعداد به قضی هنگوش شما بوده که قضیه در ضرف مدت خیلی کسار خبرده اما آین بیرحمی و کار کردن و بد کردن و کاملا تکوب کردن و پار کردن دشمن یکی هم این بوده که جفرش له بکنه و این همین جا همگه بعض که سرشو برید بعض این از این تف از پشتش کشید به پایان د کند و بسپور خوپوررو چه آره. است فور کار. در این کشور از اینجا میگن که بعد تلفن ریشته شده چاغ یعنی پوستی در این کشور چرم و برگشت فاهم. بله بله, بله. زیره فاض کردن به فائس فردن وامال کردن بله شنو ما اون چین را خواست تو یکی از مسائلی که باز اینا مسائل قوم و قبیله اون روزا اگر کسی چینهشو نمی نمی‌کشیده، این نام مرزی نداشته یعنی باید اگر سفه اینو تلافی کنه از من و شدیدتر اهل سنت معتقدن که بعضی که اماسه اینو کشتن هفتاد دو نفر خروج کردن به خونخواهی اونسه ولی که ما شیعه مرتضی علی معتقدیم که مختار این خونخواهی رو به طور کامل کرد اما دیگران این قبول ندارن میگن چین کینخواهی. کینخواهی که خودشون مثلا کشته بشه و کارش تموم نکنه این تموم رو به کار و معتقدن در کتاب ابو مسلم نامه هست که هفتاد یک صاحب خروج پیداشتن خروج کردن بر ضد بنی اومیه برای اینکه که بنی اومیه سرکوب فرکوب میکردن خروج کردن از ضد بنی اومیه برای همه سطرها خوششان کارشون تمام شد صاحب خروج هفته دو بام ابو مسلم خرافتانی بود که کین امام حسین رو از بنی اومیه به طور کامل خواهد بنابراین مسئله خواهی مسئله خیلی خیلی می بوده بر داستان سیاوش و بعض که جنگی که رستم میکنه به کین میره و در توران شرح این جزئیات میده که اینا برای کین چه میکردم چه نمیکردن؟ ازبطه خیلی خیلی اطباب افتخار نیست ولی خب هم نیست که هست هزار سال پیش 2000 سال پیش آدم مثل سال پیش فکر میکردن مثل حالا که فکر نمیکردن به علاقه الان مرحمد ما تو دنیا همچیش که دیره داها چیز اونو نمیدین برکه ایسا کابیسا برکه برکه برکه چون آمد منان کینه را خاطر سلامتی آمد که روزگار چهار روزگاه از کینه خالی بشه باید بمیره که بیارزوی نشه بشه برفت و جهان مردری منده مردری یا مردری که یعنی میرا فردوسی شاعر عارفی و هر وقت صحبت مرگ و نیسی و این مسائل میاد فوری ترجع خوانده رو جلب که این با این قدرتی که داشت این با این حشمت و نعمتی که داشت با این دم و دستگاهی که داشت هیچ چیشو نبودا و واضح باشین که جزمینیکی چیزی رو آدم همراه خودش نمیبره جائم این مطلب رو تکرار میکنه. به تناسب اهمیت موضوع که بزرگتر یا و کچیکتر اینا رو مرتب تکرار میکنه یکی از جایی که خیلی رجوعی مطلب حد میزنه در داستان ایرج رو سردم باشی رفت و جهان مردری مانده نگر تا چرا نزد او آب میگه دنیا از او میراست واقعیمون ولی ببین کسی هست که اصلا در برای دنیا آب داشته باشه یعنی همه باید برن برای اون تنها نیست دهان بنده و گردگرد گرد ره سود به مود و خود ماگه خرد میگه دنیا ظاهرا، آدم های قره میشن بهش ولی بله من امروز کنم فول درست کردم حال درست کردم فول مانی میکر شدن چه کردم؟ فولن کردم اینا را همه رو مغروب به این فریب میکنه همه مردم در حالی که سود و سرموی همه اینا به خود با او گرده یعنی یک دونه از اینا هیچی رو با خودشون نمیبرن چهان فریبنده و گردگرد سود بنمود و خود مایه خر. و از دوشانش نازال اصل سرمایه رو خودش خورد جهان سر به سر اینجوری غلطه این چیزه این کلمه غلطه جهان شده جان اینو اصلاح فم جهان سر به سر چون فتام است و بس نماناست بدون نیک فر هیچ دانش این که در جزبه گذاشته ما تا آخر یومرد اگر من اشتباه نکنم ممکن هست اشتباه خوندیم گویا تا رفتنی که یومرد اصطلاح و آخرش هم من اشاره کردم که فردوسی شاعر حارفه و جای این هست شاید انشاءالله خود بنده این توفیق رو پیدا کنم اگر بشه که چه از این آرزوهای بردن آمده دارن یک شمیه این که این ارپان فردوسی رو در کتاب شاهنامه ای که ظاهرن همه ی صحبتش راجع به ها نگنات این رو بیرون بیارم ما همین قدم های اولیم محل... این نخستین انسانه بعد که می میره می که میمیره میگه که برست تو جهان مردری مند از میگه دنیا رو با خودش نبرد مردری به موردیک دهانی یعنی چیزی که از مرده باز میمونه بهش میگن موردیک یا موردیک. ریگ برفت و جهان مرد ریگ مند نگر تا چرا نزده او آبروی میگنی نگاه کنیم اصلا هیچ کس در قرابر جهان داره همه رو بدون استثنان او علی سینا رو هم همون جوری میبره را از وقت شروع در شعر لاطی و اینو حافظ توی یه غزلی داره که ازل منسوب به روز مرامید اگر بار از دست برد چه می باز به من باز آورد می دست برد اونجا میگه که چشین تا جونم کن به کار دنیا اونا که در وقت مرگ عرف تو به حد جان چه کرد هیچ نست میگه برفت دو جهان مرد شما یه وقتی داستان داستان کرده رو هم به اسلام باز بگم که نه آقای داری زده هم نه چپ چپ چپ با هم مصیبتی داشتن ایران حقیقتا برفت و جهان مردی مند از اوی نگر فاکران از دو آور اوی جهان فریبنده و گردگرد راه سود بنمود و خود ماگه خرد طوره میگه بلید اموال این پونش هم کنه اینو درست کن راه سود روید میده ولی ماگه که عمرتوه در برای میخوره خودش جهان سر به سر اون فتانه و پس نماند برای نیک برای هیچ راست اینجا گفته بودیم میند برای مثل این که رجب پیشدادیان و پیشداد هم حرف بدن و گفتم که پیشدادیان اسمشون در در شاهنامه اصلا پیشدادیانی وجود نداره سلسل پیشدادیان و در عوستا به نام هوشنگ پیشداد محروف شده به همین دلیل این پاترهان رو بهشون میگن تا چهانه پیش داد و داد به معنی قانون تیش داد یعنی افلی کسی که قانون رو ایجاد کرد کلمه دادگر و اینا همینطور همین طور زمانی قانونگذاره اصلا خوشنگ رو اینجا اولا در این که ما داریم یه قسمتی رو قسمت مربوط و حاخشه. قصه جشن استفاده و معاشدن آتشین حتبا رو به صورت الحاقی آورده و در مرد نعی آورده عرض کنم که اینجا تمامش رو گفته است که در بازی نصفها بوده ولی توی مرد نعی برده بسته حال بنده قبل از اینکه وارد اون مسئله آتش این حرفا بشیم چون صحبت این است که آتش در دوره اوشنگ کشف شد چه شد چه شد جواب این است که اگر نظر علمی ما بخوایم درقت بکنیم آتش همیشه روی زمین وجود کشت و چیزی نبوده که بشر احتشاف بکنه. دلیل این که سرقه یا برقی اگر میزد، آتش سوزی می شود تو جنگل آتش سوزی می شود که هنوز هم داره میشه و با هم بشر جلوس نمی تونه بگیره عرض هم که منابع گاز زیرزمینی که بوده می بیرون گاه اینا به دلیلی می گرفته و همجورد فوله آتش وجود داشته یا آتش کشانی باعث می شده که حریقهای عظیم تولید بکنه تر خشک که با هم بسوزونه بنابراین آتش چیزی نبوده که بشر باش آشنا نقص روزهایی که کره زمین به وجود آمده آتش هم روش وجود داشته پونچه در اینجا اهمیت داره و باید ما توجه داشته باشیم با اون فهسته ای که هست که بسرم من میخونم با اینکه که در هست. این است که میگوید که یه روزی شهر روزنگ داشت میرفت و یه مار یاه درازی جلو و چون اون وقت اطله هی نداشتن حوشنگ یه تکلی کرد مار مار از ضربه سنگ جان به سلامت بود و رد ولی سنگ به سنگ دیگه خورد و هر دو سنگ در هم شکستند و از برخورد این دو سنگ شعله آتشی پدید آمد این تدید مکانیسم پیدا کردن شغله آتش از طلاقه سنگ یا بعدها از طلاقه سنگ و آهن رو بشر بده من سن ننفضا نمی ولی یادمه که مادر من می که در روزگاری که اون جوان بوده کبریت این آسونی که حالا که دیال هم دلیل چیز رو درست میشه خودش ولی کبریت این مسائل آسون و فندک و فندک گازی بازی نبوده و باید سنگ چخماخ و آهن رو میداشتن و بعد پنبه نیم سوخت یا یه نوع طوب بستیار سستی بوده به نام قو می داشتن این سنگچهمای که میزدن این جرده می‌پریده و خونه میکرده توی اون پنبه نیم سوخته یا توی اون خوب و بعد بعد پوت می‌کردن کم کم دود می‌کرده و بعد ما شیزام نوازه که میداشتن اونجا آتیش میکرده به هر حال آتیش گیروندن تا این عواخه و این که در خانواده های مرسوم و قرار است اصلا اصلا خانواده رو میگن قانون خانواده دیگه قانون یعنی اجاق اگر خانواده هر خانواده‌ای اجاق روشن وجود داشته باشه الان حتی ما 1300 400 مسلمون مسالمون سویم ولی کسی که کس یعنی که بچه نداره میگه من اجاقم کوره این معنیش اینه که اگر کسی بچه نداشته باشه کسی نیست که اون آتش خانواده رو روشن بکنه باز دیگه اجاق خاموش به این دلیل میگن اجاقم کوره و اصطلاحات بسیار زیادی که برای اجاق کسانی که صاحب چرامت زن اینا هم سید اجاق حاضین پاد آتش میشه زردستیان مقدس هست و انصور خیلی صف و پاک هست و انصور پحلاست اما غیر از اینا یه فایده عملی هم وجود داشته دهیه ی آتش رو گیروندن آتشنا کار آسونی نبوده بهتر در خانواده یه یعنی به آتش خابونده داشته باشه و اینکه که هر وقت خواست آتش بی اصوزه دیگه گرفتاری نداشته باشه و اینا به این دلیل این آتش رو نگه می داشته. در هر صورت این قصه ما رو اون نشون میده که در دوران و اوشنگ بشر تونست آتش رو مهار کنه نه که آتش پیدا کنه آتش پیدا بود اتفاقاً آتش چیزیست که هیچ حیوان در رنده که نیست که به شدت درش نترسید شیرو فیرو باره که اگر جنگل آتش گرفت هم اونتون میمونم و میسوزن راز بریز ندارم این بسیار چیز وحشت همیده که بوده هست، هنوز هست، با همه این غزت بشر، آتشی که طبیعت بر افروزه جلوش اصلا نمیشه گرفت، این آتشی که اینجا حوشنگ صحبت میکنه صحبت ماهار کردن آتش که تونستن هر و خواستن آتش روشن بکنن، هر و خواستن آتش خاموش این رو در این شاهنامه ایدو که خالقی میگوید که گوهر آتش به چنگ آمد این کاملا نشون میگوید میگه نخستین یکی گوهر آمد به چنگ دنیا آتش در اختیار آدمیزاد قرار کرد نردودش برحاد از ما میگه بعد از این چیز شده بعدم بعدم افتانه درست کردن که بعد این رو جشن گره فهر این جشن رو دوستن جشن صده که در حقیقت جشن آتش اصولی من قسمت الهاقی رو در صفحه بعد میخونم که جز معنی و نمیخوام توضیح مفصل بدن بعد میام از افقل کار شروع میکنم در صفحه صفحه سی یک 21 یکی دو یک بیت،, بیت،, بیت, بیت هست اینه میگه نگفتارم در نهادن جشن صده از اون بیت هلهاوی میگه یکی روز شاه جهان پیش کوه گذر کرد با چند کس همگروه پدید آمد از دور چیزی دراز سیاه رنگ و تیبتن و تیزتار دو چشم از بر سرچ دو چشمه خون سو دود جهانش جهان تیرگون نگه کرد هر کوشنگ باهوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ به زور کیانی رهانی دست جهان سوزمار از جهان جوی رست با آمد به سنگ گران سنگ خورد همان و همین سنگ بشتی از خورد فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ آزرنگ یعنی آزر رنگ دو کلمه وقت دو کلمه هم ترکیب میشه که حرف آخر کلمه اول و حرف اول کلمه دوم یکی باشه یکیش حض میشه رنگ میشه آزرنگ دوست تر میشه دوستر یه دوتاش نمیاد این قاعده است تا همون زبانه اندوروپایی هست دل سنگ گشت از فروغ رنگ نشد ماز کشته ولی از آن تپ سنگ آتش آمد پره هران کس که بر سنگ زدی از او روشنایی پدید آمدی کاملا روشنی که می آتش تحت یار بشر به دست آمد جهانده آتیش جهان آخرین نیایش همه که دخاند که او را فروغی چنین هدیه داد همین آتش آنگاه قبله نه ها بگفتا فروغی این ایزدی پرستید باید اگر بخردی شب آمد برفش رو آتش چکو همان شاه در گرد او با گروه یکی جشن کرد آن شب و بازه خرد صده نام آن جشن فرکنده کرد به اوشنگ مندیم صده یادگار بسی باب چون او دیگر تذاباب کردن جهان شاهد کرد جهانی به نیکی از او یاد یک نکته کوچه که دیگرم در برای جشن صده بگرم جشن صده روز مونده و آخر سال همین جهان بخمان و آگه کله نصده صحبت از صد میزونه صده, صده, صده, صده دیگه ساعتش هم ساعتید قفتر رو بعض زیاد ورداشتن نوشتن به این دلیل است که ساعت پنجاه روز و پنجاه شب از سمونده میره درست می. اصل ساده باید از این است که در ایران قدیم دو فصل برای قائل بودن یکی تابستان بزرگ یکی زمستان بزرگ تابستان بزرگ از اول پروازین شروع می تا آخر مهر از اول آبان ماه که آبان دیگه یعنی ماهی که آب از آسمون میاد آبان یعنی ماه سیدهشی بارم از اول آبان تا آخر اصفن پنج ماه زمستان بزرگ از تابستان بزرگ میشه دیویست و ده روز زنستان بزرگ میشه صد و روز صد روز که از زنستان بزرگ میگذشت جشن صده میگرستن که پنجه روز من دور آخر زنستان یعنی این حساب صد رو بعد از اول شروع که نه از آخر ما درست و همین جشن استاد این هست بعد میگن که آتش می تشریفات تحریفات مفصلی داشته این کار و آخرین جشن رو تا اونجایی که ما مدارک تاریخی در اختیار داریم در تاریخ بیهری میگوید که در دوره سرطن مسعود غزمدی یا حدود سال بیم 421 تا 431 بازچایی میکرده قمری جشن صده گرفتن که به هزی شرحش رو در تاریک خودش آورده حال جشن صده منصوب به همشنگ بعد پاہین در چیز که نورولف هم منصوب به جمشیده و مهرگان منصوب به فریگون این روح خواهین از دنستان بزرگ این از اول آفا نسخه بزرگ 6 ماه، فارسی بزرگ، زن نسخه 5 ماه، فارسی بزرگ، 6 <تصفح> خیلی تازه است و بعد از بعد از اختیار الف عربی وارد زبون ما شده. بنابراین شما از فاده خاطرطاری ظرف از امکان که دوره دانش آموزی بنده اه... تو دبستان و ویرسان است چند تا چیز رو نوشده، مثلا صد و میتونید که به ساعت بینیمیسید یا به سیم بینیمیسید یا قلطیدن و تفیدن نمیتونید با سا بینیمیسید یا با سه بینیمیسید کلمات فارسی از این که چرا شده دیگه بحث پنیه نه بحث پنیه خیلی درازی که الان اینجا ما نمیتونیم بکنیم پر بی خودی هم نبوده همینجوری. مثلا چطور شده که تهرانو با تهر تبرستانو با کامینو نوشتم ولی هیچ وقت دیدنش تبریز و با ثا نیست. اگه حساب نداشته فقط عربی ماوی بوده خب تبریز هم توش هست هیچ فرق نایست. قرارو تلفظ این دو تا ت حتماً با این مال من نیست اینو مرحوم استاد من مرامت استاد جلال امامی میفرزدن یه روزی اینکه همین همینجوری فکر کنیم که نه اینا چیز بودن و بودن و وعدم عرب ماق بودن و وعدم کردن نه این درست نیست این که ساده کردن و ساده نگری و اینکه که چه هر هرکی از ما دیدیم ایش که نعیده این حرف مفته بودن بزرگان بودن آزم بودن تانی بودن دقت میکردن در مسائل که گاهی آدم حیرت میکنه همینجوری نمیشه چیز کرد. به خصوص که گاهی این قبیل مسائل پیش میاد که آدم میبینه خب این یکی هست که نیست این دیگه جای, جای بحث واقعی نمیداری که لابد یه چیزیه بی خودی نمیشه برحاد اما راجب حوشنگ بعضی ها گفتن که حوشنگ مرکز از روش و هنگ اونم به معنی قرز و دوانش آزین حرفاتی در کلمه فرهنگ هست این درست نیست یعنی این اشتفاق عوامانه من الان یادم نیست یه وقت مطالعه کردو دارم بر باب این کلمه اوشنگ چیه ولی الان به خاطرم نیست و حالا با حضی زر تبلیغم از خودم بکنم یه هشت نوار ما در تفسیر اتفاقا همین بخش، این بخشای بخشای نیگر شاهنامه فلدوسی حاضر کردیم که در در میاد در این چند روزه امیدوارم بارم در همین چند روز در بیاد. اونجا معنی حوشنگینا رو دادیم هر که ولی تا جایی که یادمه مثل این که حوشنگ کسی که برای مردم خانه های خانه مناسب تهیه کنه. اگر اشتباه نکنم. حالا <تصفح> چون خیلی دقیق یادم نیست روی این فشار نمیاد ولی به هر حال بله این نوارا چیز میشه و یه خیلی رو میخواد منشالت که من یاد بازه خورم تبلید نه ولی واقعا خیلی خورم ارز کنم که اشتا نقاره روشم آقای زمان زمانی نقاشی کردن جلتای خیلی خوکه از یک ماه دیگه برای بله خود من میارم اینجا خودمون میاری اینجا <تصفيق> ما در گذاشتیم فقط برای اینکه پولش در بیاد برای کارهای دیگه که داریم در پیش 50 دلار برای 8 تا بله، ارسونم که میگه جهاندار روشن با راز تاج به جای میا تاج بسراهم. یعنی تاج وجود داشت. وقتی در که اون طاحت روشن می‌ریشتن تاج وجود و اون مفلس هم گفتن که نفر دوم معمولا حد میشه بارها این اتفاق افتاده اینا گفت پاترهای اوشنگ هم چه سال بیشتر نبوده بگشت از برش چه سال چهل پر از خوش مغز و پر از داد دل چوبه بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منم پات هر جا، هر افراز و فر فرماندوا به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش، تنگ، بستش، کمر یه شینی داریم که ما تو تهرون خیلی بکاییم ولی میگیم رفتش، گفتش، این کار کردش، مثلا یاروزگیدش زمیر پایلیه بر آثار عددی بیشتر زمیر مفعولی هست اصلا میگیم دیدش یعنی او را دید یا گفتش یعنی به او گفت و من دیده در بچگی که قومشای اسمانی داشتیم وقتی میامدن عده های ترمیاری که محاسن در بیارن میگفتن که ربتش گفتش اصلا <تصلاح> <تصلاح> این ها به هوای این غلط این بعدها چیز که نه در سبت قدیم در روزگار قدیم در اغلا به کتاب زمیرش که این فایلی هم آمده و استعمال ادبی داشته تو بی سرامین میگه که نداردش پاسخ و با من برا شد چنین گفت و چنین گفت و چنین گفت نداردش پاسخ این ندارد پاسخ به دعا دو دهش تنگ بستش کمر یعنی کمرش پر به امونه خب کشفر میشه دو دیده؟ بالا خیزی توپی ندارم که بیدم عرض که عدد هفت عدد خیلی مقدسی، خیلی خیلی و قدیم تخصیم که حالا به 5 منطقه یا پنج قاره تخصیم می دنیا رو به هفت اقلیم تخصیم می به تناسیب کشورهای اون زندگی و از این حرفا که تبعیض اقلیم‌های های اقلیم‌های های معتدله بودند و اطلاع خیلی زیادی هم که نوشتن از دنیا قدیم هم که نوشتن اگر هم من الان هفته اقلیم نمیگم اقلیم اول کدوم اقلیم دوم کدومه دلیلش این است که تو کتاب های مختلف این اقلیم ها رو با هم فرق میذارن و توی یه کتاب ممکنی یه جور بینیسته توی یک کتاب یه جور دیگه علتش اینه که هر کسی خود. دنیا میکن. فکر خود که بهترین جای در دنیا این و این است. هیچ کاملاً طبیعی بشاره بنابراین از همونجا شروع می‌کنند به اینکه باقی دنیا رو تصدیم کنند که اونجاها کجاست و می‌گفتند ایران و انیران ایران و جز ایران جز ایران یکی بودند مرخص ایران و ایران این است که هفت کشور که میگن این سواسر جهان و به تناسا اون به کشور اول یا هفته ام اینا دور افتاده سر ها بودن سه بوم و چهارم اینا نزدیک هم بوده و مراد هفت در عوستا هم از قدیم ترین این تحسیمات وجود داشته و در عوستا هم هست و حتی تحسیمات در همین قسمتی قریدون که تحسیم نسانه بین ایراجیس در رو بر چیز نه اینا اونجه از این از این اولین و این تقسیمات است و زانپس میبینه که اون روش یه باب زمه گذاشته که میشه او او زانپس که هنوزم در اسپان این مرسومه میگن که مثلا فلان کسی جوون است و خوشکله است و نمیدونم پلان این او هر در او است عبر و باد و مه و در کار است بخونی عبر و باد و و حالا هر شر آت این, این وابی که در فاضلینی تلفظ فاضلیش اور در علبهام اور اینه. اما با عربی همین علامت هست با پاته و تلفظ میشه و. واو عربی هم مثل دولگیوی پارسی تلفازی تن... یعنیسا واو ما, ما تلفاز نمیشه وا. و و که عربی قاتی شده اون حرفای عربی که اول شعر قرار میگرفه و خوندن وزن پس جهان یک آقاق کرد ولی در هایگرات خیلی راحت میتونیم بخونیم او وزن پس و این که اینجا علامت بودشته یعنی اعراب بودشته روش نشونیم که حسی خودش همجور بوده یعنی خونده میشده به اعتماد قوی در موزگاه خونده میشده اوزان اوزان پس جهان یک سراباد کرد همه روی گیتی پر از نخستین یکی گوهر آمد به چند گوهر اسکلاه علمی اصطلاح فلسفه است همونیست که محرمش میشه جوهر گوهر و جوهر در مقابل عرز در فرصته میگم که جوهر یا گوهر چیزی که به استقلال خودش وجود مستقل جدازانش داشته باشه این گوهره اینک سنگ آجور گج هر از که خودش نمیتونه وجود داشته باشه مثل سفیدی چیز رو نمیتونی بیاریم بیرون بگیم این سفیدیه سفیدی شا. یا باید گچ باشه یا رو بستانی باشه رو نیستندلی باشه تا حس کنی. یعنی وجودش بستگی داره هوش اونجا چه در اسم معنی اینا هر از که وجود نداره بیرون بگیر این هوشه علامتش در یه آدمی هست میگی دیو اون اونها معتقد بودن فلسفه‌های قدیم حتی هم خبر دارید البته هیچ چیز نیست که عالم عالم مادی از چهار گوهر درست شده آب و آتش و باد و خاک و تمام سایر چیزهایی که در دنیا هست اهم از مدنیات و نواسات و حیوانات اینا از ترکیب اون چهار گوهر تشکیل نیست بگم که سالهای سال 400 سال از دور رونتان که این نظریه باطل شده یه حرفی نیست و الان هم اگه حرف میزنیم به دلیل این است که گاهی برای فهم شعر اینا لازم که اون نظریه رو بدونیم اگه ندونیم نمیفهمیم و گوهر فرض در فلسفه به چه لازم میشه؟ چشم. چشم، اون یه داغی، که البته به این جزء لایتا و الان اطوم ها میگه اون اطوم باز غیر از این اطوم حال که حاله میگه، حل کنم که اینکه میگه یک گوهر به چنگ آمد برای این که اون سه دیگر در چنگ بود با دیارو میزادن آب بیکردن خاک بندش نمید باید که بود اونها آتش در اختیارشون نبود میگه اینو به اختیار شد یک یکی گوهر آمد حالا این چهار عنصور خاک از هنه سنگینتره خاصیتش سردی و خشکی خاصیت خاک سرد و خشک آب خاصیتش سرد و تر. از وزار سبوکی بعد از خاک قرار داره و قبل از اون دو تایی دیگه یعنی سنگینتر از اون دو تایی دیگه سه بومی حواست گرم هست تر توحارمی آتش که گرم هست و خوش این آتش رو با این علوی که ما میکنیم توی چیز آتش یه انظر فلسفی اون توحار انصر رو با این آتش که ما می کنیم به شعلی نزنه مقاید نفر اون آتش رو افضال دین کاشانی تو رساله ها شهر اینجا یک کره ایست فرقراز کره هوا یعنی اینا به ترتیب در مرکز همه کره خاک روش کره آب روش کره هوا روش کره آتش که روش میگن اسیر یا ایتر میگوند که این رنگ نده فوق آدم لطیس و بلا فاصله از لحاظ کسافت و از لحاظ قذت بعد از اجرام فلکی اجرام فلکی از او لطیفترن ولی میون این چارونسر از همه لطیفتر بود و همه دل مافوق میگه فوق, می فوق الادم گرمه ولی ما اون گرمی رو نمیبینیم از کجا میدونیم گرمه این شعابای صاحبی که میاد که حالا ما میکنیش رو میدونیم این ذرات ها سنگ های سرگردون که در فضا هستن وقتی پرخورد میکنن به جاب به زمین زمین هم که مشاله به این ساکنی نیست که ما داریم نگاه میکنیم که ثانیه کلومتر رام سانیه 19 کلومتر کافیست که یه سنگی که در هوا پرگردون است برخورد میکنه به زمین این با ثانیه 19 کیلومتر سرعت رد بشه ازش. دوش در که استقاق فوق با هوا این این دافت میشه و میسوزه و اوسیده میشه و میسوزه سموشه بایی هم شعله میکشه خیلی شدید و اینا و بیگه به میمونه که به صورت سنگ میفت زمین که اکثر هم این آسمانسنگ ها هنه هست برحال بابا افضل میگه که علت این که میدونیم این خیلی گرمه این هست که به محض اینکه یه چیزی شهاب یه چیزی میده از کره آتش گذر میکنه میسوزه این و هست که این کنه آتش گرمه بعد میگه این آتشی که ما در زمین درست میکنیم کنیم میله به علو داره میله به علو داره و این روبه اون حیز خودش میده. برای که انظار فلسفی میگوین که هر کدوم از اینا یه حیز دارن حیز واحی جیمی و زه به معنی مکانه انتباه علیت که من کلمه رو بکار ببرم برای اینکه اصطلاح فلسفی بحث و بگم مکان باید حیز رو بینید نمی کن میگن یه حیز برن و این حیز برده و طبیعتشون تحییم میشه یعنی خاک در مرکز قرار نگیر برای اینکه اصلاح سنگیتر حیزش مرکز ما میگه اگر شما بخوایی یه قسمتی از این خاک و سنگ آزد از مغر خودش دور کنید باید حرکت قهری بهش یعنی به زور قرشت دردارید بالا با تیاره بالا یا با نیروی دست دیم تا وقتی که این حرکت قهری یا حرکت قصری قصر و یعنی همون قهری هست این به خلاف حیض خودش حرکت کنید به از این که حرکت خونسا شد بر میگرد به حیض خودش سنگ ده بالا میگه به وحض اینکه اون وارد شد برگرده میاد به مرکز خودش از باز ما حالا میدونیم که این علت رو زمینه و اون استعداد درست بعد میگه دلیل این که این حیض درسته اینه که اگه هوا رو شما باید زور ببرید زیر آف تا بلش بالا میاد به به این دلیل میگه که هر کدوم از این اجرام میل طبیعی دارن و به حرکت طبیعی و حرکت طبیعی سمت حیز خودشون کشیده میشه و اگه بخوام این رو از حیز خودشون دور کنیم باید به حرکت قصفی به حرکت قهری اینا رو برید هوا رو میخواد زیر آب ببرید به زور باید ببرید سنگ هم میخواد رو هوا ببرید به زور باید ببرید الان در زم یه دلیل محصد که هم میرم ولی این کاشانین که میگه این چهار و انصار همه به ه و وسط شون وجود نداره یعنی خاک فاصله با آب جاته شده روی آب و هوا چسبیده به اون و همینطور آتش بعد میده دلیلش اینه شما یه لوله رو بکنین این کارو که این تجربه که داریم یه لوله بکنین تو آبو بخواد بچرید بالا شما هوا رو میچرید بالا بینید آم هم باش میاد بالا بس معلوم میشه که این هوا و اون آب اسبیده نمیشه جدا بشه به اینکه باز میدونیم این نتیجه فشار عواظ و علت دیگری داره اما اون روز به این تردیب ثابت میکردم که وقتی شما یه لولار هوا رو کش کشید بالا آب هم دنبالش میاد بالا این نشونه که خلع وجود نداره و این, این گوهرها همه به هم چسب. این به طور کلی قصه گوهر عرض هم که عرض کردم هم عرض ابارت از نیست که وجودش کائمه به ذات خودش نیست مثل سفیزی، مثل سیاهی، مثل شیرینی شیرین بودن شما به بگیم کند شیرینه یا شیرینی شیرینه یا شیره یا حتیل خود شیرینی وجود نداره که مجرد اما جوهر فرد به لاخره فلاسطه در اینجا می که جسم را می شه تخسین کرد, تخسین کرد, تخسین کرد تخسین کرد کرد که یه جایی میرسیم که دیگه این دونست نمیشه. یعنی یه جز که دیگه قابل تخسین و جز ای دیگری نیست که این دوش می گن جز لاکه یعنی جز که دیگه به اجزا تخسین نیش البته این تخسین ذهنی و فکریستا تخسینه عملی در اول عمل نیست برای که اون جز که هر عمل ما خیال میکنیم اون مثلا سبت و مالکلو هم جذبیده است عرض کنم که این تحصیم فکر گفتم جز جسم جایی میرسی که جز است که دیگه قابل تحصیم یعنی نیست اون رو شکن جوهر فرد یا جز لایه تجازه و البته عده ای محالف بودن ما این یه دسته از علمان یه دسته از فلاسفه موافقه این کار من که به ش یعنی معتقدان به اطحام که می گفتن اجسام از اجزای لایت اجزا پشکیش و جایی که این جوهر فرد خیلی شهرت پیدا کرده در شعر حافظه بعد از این هم نبود فاظه در جوهر فرد که تو بر این نقطه خوشت بدلاد این ده ساز از کوچکی جزء لایت اجزاست یه تحصیم پذیر می <تص> نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به آتش آهن جدا کرد سنگ. اینجا من یک نقطه دیگر رو براتون بگم که احیاناً براتون جالب بشه شاید هم کرده باشم یا نکرده باشم نمیتونم پشر خیلی پیشتر از اون که آهن رو استخراج کنه به آهن دست بدی دلیلش این است که آسمان صنگی ها تقریبا هاش از آهن خالص خالص یعنی آهن 100 درصد خالص و کاش شما برین من در لندن دیدم شاید جاهایی هم هست تو موزه های علوم طبیعی که برید همه نمونه های این آسمان صنگا رو دارن تو موزه علوم طبیعی من لندن من راست یا آسمان صنگی داشتن انگار بعد این از وفت عره زده بودن وریده بودن دو دوتا قاب این طرف بشتنه که اون طرف وسط مغزش آهن شفاق درخش آنش آهن خالی و این آسمان سنگ ها ناهیهی که بیش از همه میریخ روی زمین در خاک ترکیه فعلی در کشور لیدی های قدیم اونجا ها پیدا می میرفتن و اینا رو پیجا میکردن و از اینا سلاح میکردن و قصه انترکت نشبداد قصه انتر که انتر قهلوان هماسی عرب درست مثل رستن ما مثلا چنین چیزی هست اونجا حالا داستانی هم میگه که من داستان نمیخوام میگم یه شمشیری که انتر داشت از آسمان پنگ بود اینی از آسمان پستش میدونید که گفتن که ظلفخار علی ابن ابی طالب هم از آسمان پرستادش دوست و هم گفتن که طور ابو مسلم از ظلفخار علی تگیش دو آهن او تگیش و این خیلی عجب نیست یعنی اینو مردم فقط افتانه نگفتن در قرآن کریم هست که و انزل للحدی و فرو فرستاد آهن را انزلن الهدید سیه بحثان شدید و مناخ اولننا فروف رستادیم آهند را که در او بیم شدید هست مناخهی هم براری مرزان هست برای در قرآن یک سوره هست بنامه سوره حدید سوره آهند خواست دسیار دیگری هم آهن داره که من اینجا نمیتونم بحث دنم یکیش خواستیه تو زبد جادویش تو که متقف که آهن بود درست به این دلیل که جرم آسمانی است جادو رو باطل میکنه و زحاک جادو بود که که میدونید و در برابار کابه ایش کار نتونست بکنید و آهنگر و آهن خیلی در میتولوژی در افغان های نتحسیزش ده در افغان اسپندیار میگه اون زن جادو یه زنجیر آهنی زردوشت از بهش آورده بود به بازوی اسپندیار رسته بود به این دلیل زن جادو هرچه جادو کرد جادوش در اصفندی ها تحصیل نکه در اصفندی ها رو گیره بکشت برای ندارم محصودم اینه که این که میگه که به آتش آهن جدا کرد سنگ این قبل از این که به آتش تنگ از آهن جدا بشه قبلن بشه به آهن دست یافته بود آهن خیلی قدیم یه نکته نکته دیگر این هست که ما امروز واقعا یه چیزایی رو نمیدونی و یه مسائل رو نمیتونیم بکن الان مثلا جز سنایه خیلی پیشرفته فولادی و فولادیزی یعنی ستاینل ستیل آهن زنگ نظر و این در لاباتو آدارن وسائل دقیق دارن و در از حرارت های سکوره رو درجه و هم بالا بیارن پایین بیارن در هند در شهر دهلی یک منار بلندی هست که ارتفاعش تقریبا نصف ارتفاع برژیفل منطقه 600 سال قبل از برژیفل ساختش به نام گتب یعنی همون گتب بادچای بوده به نام گتب تین تغلق این دستور داده این منار ساختن صافتن نیست گلدسته های ما از منطقه پایینش پهنه تره خیلی پایینش پهنه گلدسته یه چیزه اون پاینش پهنه میره بالا گتب منار پهلوی این یه ستون آهنی توپر مغز داره ستونی که مثلا بنده اگه بخوام بیام اینجا از کشت این ستون رو بغل کنم باست هم نمیره بعض یک دستشون درات کاره میره و این ستون دقیقا دو متر دو متر و بیس بشه آهانه. و اونجا میگویند که اگر که بتونه دست بشه از پشت این سوتون رو بزردش و هم برسونه هر این که بکنه مراکب خواهد داده میشه جایی است که حراوت بیاد، رتوبت هم زیاد علم گرمخونه همون سر تو گرمخونه همه های ایران هم و پاشین بینس میاد اونجا، سال دو تا هم این را رو بدنش بعدنش سراخ سراخ پشت از پشت زنگ رنگ میزن میاد روشت، رنگ روشت هم سال این ستون اونجا هست، زیر اون بارونای سیلاسا، زیر اون حرارت زیر اون رطوبت سر سوزنی زنگ نزده و اصلا معلوم نیست در اون روزگاهی که سخت پهن و تاپاله بوده بود حد اکثر چوب بوده، هنوز زغالتن که نمیشناختن اینا چطوری این همه آهن رو زوب کردن و غالب ریختن به این به این چیزی و به اون بزرگی با چه وسائل این آهن رو به غالب واقعا ریختن بعد بلند کردن، چطور بلند و پوتا کردن، چون همه جرسخیل هست نبوده و تمام این احوال نهرو در احوالات خودش خیلی با افتخار از این ستون یاد میکنه به عنوان یکی از مظاهر بزرگ فولادسازی هند و میدونید که شمشیر هندی همیشه در شاهنامه خیلی زیاد گفته میشه خیلی خیلی زیاد و جنس های آهند، صلاح های هندی و آهن هندی معروف به هر حال ما الان واقعا نمیتونیم بفهمیم که این ستون با اون عظمت، با اون وسائل اون روز این بچه چون بلنده پیتش ازا نمیتونستن بکنن تکونش بدن بعد این گداخته بوده این, این اصلا، اصلا ما امروز تصبر نمیتونیم بکنن چیزی ساختن ولی ساختن؟ از بل برازم اینه که مسئله آهن و صنهای آهنکار اینا خیلی خیلی خیلی خدمت هست نوحسین یکی گوهر آمد به با آهن آهنز و آتش با تیشه آهن جدا کرد سن. سر مایه کرد آهن آبگون چون سنگ را کشیدش برون آهن آبگون یعنی آهن مذاب بل... از سنگ, سنگ آهن بیرون و ممکن این آبگون رو معنی سیقلی هم درست که در ادب فارسی شمشیر و خنگر خیلی تیز رو می مثل قطره آب یه تیری کشید چون قطره آف از صفا و که بشت سر ماهی کرد آهن آفگون که از آن سنگ خارا کشیدش بروند تو بشناخ آهنگری تیشه کرد گراز و تبر اره و تیشه کرد گراز به نظرم به معنی گاباهنی اینجا یک هم متاسفه نداریم نه فرهنگ دارم اینجا نه وسیله هیچ یکی از اینا برخد شد نه وسیله نه،, نه فرهنگ دارم نمیتونم مراجعه کنم و یه نظری از اینا میمونه تو خونه خودم که باشم بیر نگاه میکنم ولی اینجا نمیتونم میتونم و حرافت کنم هم که گابه هم باشه کردنم به معنی ساختنه گراز و سبر عره و تیشه کرد تو این کرده شد چاره آب دار دریا به همونشندر بتار دریا بحنی رودخونه بنوز هم هست در پاکستان الان وقتی میگن دریا حسین رودخونه هست و هنوز هم ما در ایران سیحون و جیحون بمیگیم سیر دریا و آمو دریا سردوسی بارها گفته نهنگان برای رمزه دریای نیل دریای نیل اینه کنه. این مسئله که شاورزیست اینجا بحث میکنه که آبیاری به راه افتاد بعد از اینکه آهنگری رو درست کرد و وسائل آهنگی رو ساخت بعد آب رو به صورت نهر پیا کرد از دودخانه و آورد در هامون اینجا باز بازد عرض که کاری که شاورزی هم باز اینکه جامعه شناسی تا قبل تاریخ و مردم شناسی ناسینگن مسئله این است که تا یه مدت زیادی یه نوع تقسیم کاری به این افراد راشر شده بوده که مردم میرفتن به شکار، کار خطرناکگری بود و زن ها میرفتن به جمع وبری و مواد خوراکی نباتی که چون بچه داشتن، زندگی داشتن، وقت معیلنشن کار آسانتری بود، آنوام بکردن در ضمن این بازی ها یواش یواش به مکانیسم این که تخ رو بریزن و این سبز بشه و درگه دیده بودن تخ میریخت و بعدم یاهی در آمد و بعدم میده داد یا خارش داد و استفاده کردن به این پی اما مدت های مدید تو کشید و هنوز آثارش در ایران هنوز هم هست اینها فقط دونه رو می افشوندن و می تا خودش در بیاد خدا آبش بده خدا کودش بده, بده این در بیاد بکنه هنوز الان شاهدش هم کتاب کلیدر کتاب کلیدر محمود دولت آبادی حد میگه ایلات اطلاف خوراسون وقتی کوچ میکنن یه مشکنده ها می رو زمین بیم برای اینکه هر چی از دردیات، نونشون، غنیمت دیگه کارشون حشمداری داریه، گوسمان میبرن میارن ولی این میریزن برای اینکه بعد چیز بکنن، بعد از این همون کاریست که بشره اولیه میکنه یعنی میریخته تخمه تخمان، داد گرفته بوده یه تخمان، سه تخمان، چهار تخمان بشته به منصف میرسونده ولی به این تصمیر زمین بعدش بیقوت میشده و دفعه دوم سه بوم دیگه دیگه نبست کم کم دو کار دیگر رو هم یاد میگیرن ولی این کارها کارا... هزار ها طول میشته یکی برگردوندن این بوده شف زدن و یکی هم آب یاد. که نمیشتن که آب بیاد یا نیاد آب رو می‌آوردن اون زمین که لازم بود در وقت معین به کش آب اینا ها تایی هزارها یواش یواش یواش یواش چیز شده به حالا بعد خواهیم دید بعد میگوید که در دوران تهمورس دیدون میگوید که اینا کم کم از گوسته و زیر شدن خواهیم و دروستم هست برای اینکه بشر تا سرپناهی در دشت برای خودش تیل نیکرد و تا یه وسیلهی برای دفاع از خودش مثل چوبگسی، سلاحی به درست نمی آورد نمی تونست بید تو دشت تو دشت آفات های مختلف تحتیش که از این بود بنابراین مسائلی می خواست که بعد اول همون در فکور بوده و این این کارا اینا همه همونده ها جنبه محلی داشته هنوز به درست نیامده میگه که به جوی و به کشت راه کرد به فرکی فر رنج کوتاه کرد شراگاه مردم بدین دین برفوزود زمینی که زراحت کنن و محصول بردارن اون بازی هنوز نیست شراگاه مردم بدین دین برفوزود تراکندن تخم و کشت و دروت درود یعنی دروتن یعنی دروت کردن بورزید پس هر کسی نانخیش برنجید و بشناخ. سامان خیشت برنجید یعنی رنج برد معنی رنجیدن امروز رو نداره برنجید یعنی زحمت کشید هر هم یعنی سامان خود شدونه. سامان یعنی محله و منطقه نفوزو بزنیش بدن ایزدی جاه و فرکیان ز نخجیر و گور و گوزنج... گوزنجیان جدا کرد گاو و خر و گوستن ورز آقاریدن چه بود باز اینجا مسئله بعد در بعد با تفصیل بیشتری هم البته من بس این تفصیل رو کردم شاهنامه خالقی همونی منتشر نشده بود من به طرف شاهنامه قبلی کردم او یا بعد هم دوباره این مسئله حیوانات رام کردن حیوانات از سر نور شروع میشه بشهر وقتی فکر رام کردن حیوانات میفتد همام حیوانات سایمزون رام از درنده و چرنده و همه برندگان شکاری و غیر شکاری کنند بعد ها در عمل متوجه میشه که بعضی از اینها رام نمیشنند مثل گرگ و گاز از بعضی دیگر رام میشن ولی فایده زیاد نداره برفید ترینشون بشر انتخاب کرد از درندوان سگ از خیلی قدیم یار و خادار بشن از در دام کر و گاب و عصف و گوزفند و, و, و این که بعد باقی موندن از مرغان شکاری هم باز و شاهین و اینا رو که از مرغان دانه خارم همونهایی که هستن. باقی دیگر رو بیل کردن نموال کارشون اونایی که فایده کمتری داشت رها کرد برن این هر یه مطلب دقیقا میگه ایران ایزدی جا و ز کیانز و گور و گوزن جیان جیان یعنی خشپیم جدا کرد گا و خر و گوزفند به برز آوریدان چه بستو من برزیدن یعنی کار کردن, کردن. یعنی استفاده کرد. به دیشان دوزیشان چرید همی تاج را خیشتن پرورید هنوز قصه گوشت خوردن نیست راستان گوشت خوردن را در دوران زحاک مطرح میشه اینه حتی دوران هستت ساله یا نونست ساله جمشید هم دوران گوشت خوردن نیست بعد دیگه زحاک درقی این کسی که خوردن گوشت هم. ولی این حیبان در شیرشون از گوستشون از مواد نوادی که می گرفتن استفاده می کردن نمی دونم شاید گوشت رو هم خام می خوردن. این در اساطیر دارم می گم که صحبت خوردن گوشت نیست و تو خصوص میگه که ابلیس و عنوان خالیگر به عنوان آشپز آمد این از که ممکنه فکر بکنیم که در اون روزگاران توزگاران تحمول تووشنگ و اینا گوشت به صورت خام خورده میشده طالب و طرفتاری نداشته ولی بعد ها زحاک این کار رواج داده با صاحبتن کراسای کشم برها به دیشان برزید و دیشان کرید همین تاج را تاج را را به منی برای از یعنی برای تاج خود را فرورش. به پوندگان یعنی جون بران هر چه مو ننگست ب گشت رو به فرش برق به آهقن یعنی بیرون چ یعنی پوست رو از کله کرد اف که پوستو باز نکرد درست گرفتی بر یعنی بیرون چ رو با وقااقم چ پنجاب نرم؟ چهاران سمور از کشموی گرم اولی این لباس هایی که می پوشیدن از پوست حیواناتی بودی که موی گرم داشتن چه دا؟ کمی از کراحب بسنیم می پوستن که چرا محلق نوشتن محلق نوشتن ما دقیقا که نمیدونیم میکرد کن. دقیقاً نمیدونیم و تنها صورتی که اگر میتونستیم بدونیم این بود که سیزار زبط میشد از سیزار سال پیش از هیست سال پیش و میدیدیم که جو تلفز میکردن وقت بیشتر میتونستیم اینو درک کنیم حالا خیر، اما بعضی کتابای زبانچناسی این چیزا نوشته شده مثلا برسانیم که یک کتاب داره همزه اسفانی به نام از تنبیه علا حدوث ت کتاب به عربیت یه رساله یه گارشم در کتاب مرس مرگی بوده. این کتاب خیلی شهرت این آقای هم اسماحانی مرد خیلی با, با دقیق معقول حسابی بوده و کنجخوابی زیادی کرده در باب, در باب تلفظ حروف و توجه کرده این حروف در نوای مختلف به یه صورت تلفظ نمیشن. مثلا برد. در اصفهان اینو گفته اصفهانیه، خوشه اصفهانی. در اصفهان جیم، تلفظش ترکیبی از دی و زی رو هم میشه ز، ز. در تهران تلفظش مرکز از دی و جی میشه ج در مصر همینو تلفظ می‌کنن ی. یعنی جمال عبدالناصر مصریم میگیم، جمال عبدالناصر حجاز میگه، حگز بنابراین او اگه می نیزه سیجار، نیخونه سیگار ما میخونیم سیجار، بعد مسخلاش هم می که آه اینا چه آخر هم نه درست این مسائل هست و گویا همزه اشاره می که دو چوبت هم بودیست داشتی کلپاست که بعضیش با اون طرف ها زیتای عربی تر بوده کمی، تیز بوده کمی. اونو با سا نوشتن بعضی نبوده که با ته نوشتن حال به دقت اطلاعاتی نداریم فقط یه قرائنی گوشه کنار به دست میاد که میدونیم که این قبیل مسائل وجود داشته با او قدیم هم یه دقیقات هایی میکردن اینجور نیستش که اگه دیدید بعضی از این دوبله فارسی ها به خصوص رو گیرش میاد خصو ساعت هر سین و نم نثار میکنه ته و فکر می‌کنه که این پارتی شدگی. یه وقتی از که تو برنامه رادیو میگفتش که مانی بود بود. یه اندو دقیقه پنج سه که هر چی رفتم وی جی رفتم ماست و می‌گی ماست و می‌گی محلی. این که ما نیه این دی مانیه. ابی این ساعتیم ثار واردی و گفتم فکر پارتی. نیست. چطور شده که چه با تا نوشته شده ولی توران با تا نوشته شده هیچ وقت نشده این بیدلیل که نیست از این قدیل مسائل بوده که به نظرم آقای همایی اون صفن را می یه جای چاپ هم شده پیش می یه مقداری از این مسائل در مقدمه لغت‌نامه‌ی های ده خدا که این مقدمه لغتمه ها را لابود من یه ذره توضیح بدم واجبش کتابی هستم همون لغت‌نامه‌ی ده خدا که 40-50 جلده همه هم سنید ولی یک مجلد در روز 340 صفحه که هنوز مقدمه شروع نشته عنوان مقدم در این یک مجلد 340 صفحه از بسیاری از پوزلای درجه اول کشور مقاله هایی که ارتباط داره با از لغت و لغتنامه و لغت فارسی اونجور جمعواریش برای چاپ مثلا مرحوم سعید نقیسی مقاله مفصل دارد کهیت تشکیل فرهنگستان و اینچه چه اماملی موجب شدید از دوری رضا شاه بلاخره فرهنگستان تشکیل میگه ادهی تو هر بزارکونه ای از این دوره پارسی ها پیده شدن خودشون برای شمار خودشون خود این خود کار میکردن بیشترین میگفتن بعد این, این وضع همان بومیتی نمیخورد با همان بعد بودن و میگفت تو بیثوادیه چی؟ که من رو بروگی گفت که عجب باد بعد صفحاتی میوزد بعدم هم رفته بوده به شاه گفته بوده و گفته بوده که خب چکای کنیم پلان اینا این احساسات ملی بستنم بوده ولی خب این سبورم میخواد جوزشا خی احساسات خالی که نمیشن. بعد گفته بود که خواهده هم باید مرکزی تحسیس بشه که اصطای تاستالاییات اونجا باشن و اینها زیر نظر بگیرن و باید دقیقه کنن کار کنن و بعدم هم فرمان تشکیل فرنگستان رو میشه اولین رهیش هم وصوح و دوله معروف مرز بی کمال یا فرس برقا مرحوم بحمنیار اونجا یه مقاله مفصل داره در باید روش های املا. معمول جلال همایه‌ی مقاله فصل درید من دو سرمویین راجع زبان‌های دری آقای دوستی آرشاتر یک مقاله راجع زن زبان های ایرانی که من تو این بحثی درباره های ایرانی مقاله‌ی زن نوشتم که از مقالهشون استفاده زیاد نه همه در اون مقدمه‌ی لغت‌نامه با اون جه مجلد مقدمه‌ی لغت‌نامه را اگر فرصت بکنید بسیاری مقاله های درجه اول و بسیار مهم است که از اسناد خیلی مهم زبان فارسی و میتونید متعلقه کنید خیلی بهره بحره ویده یکی از نه همی مثل که مطلب آقای همایی رجوعی این مسائله همونجا هست گویا اگر اشتباه برحال ارز کنم که بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان بالا یعنی قامت <تصفيق> میدونید چه کامت بالا میگن دیگه بالا بلند به اشتگر صزب نازمن کتاق گرد به سیز بالا بالا بلند یعنی خد بلند <تصفيق> از مستر بالیدن ای. بالیدن معنی رشد کردن و بزرگ شدن خلاصه با علف مستری میشه بالا مثل پهنا یعنی پهن بودن مثل درازا یعنی درازی طول مثل گرما یعنی گرم بودن اینه علفه مستهیه بالا یعنی خط یعنی میزانی که روشت کرده بابا به گونه از کرم پویندگان بپوشید بالا و یه گویندگان در بگم که در منطق میدونو که که تعریف انسان یعنی انسان ایوار ناطقه و در گفتن این محسن در منطق توضیح رو زمین برسونم بگم که اینجا سخن گفتن مراد سخن گفتنی که از فکر قبلی باشه این نسخه توتی که متکی بر تقلید و هیچ از معنی اون که میگه اطلاعی این رو منطق به حساب نمیاره اگر میگن انسان حیوان ناطقه یعنی انسان حیوان متفکر فکر میکنه مرسد. و هر و گویندگان به این معنی برنجید دو، یعنی هم با زحمت کشیم گفترد و خرد و سپرد به افت و جز از نام بر دوباره همون بحث و شروع میشه. شه پانش بسی رنج بردن بران روزگار به افتون و اندیشه بیشمار چو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری ماند گاه مهی گاه به معنی تخته گاه بسیاری معانی داره بسیار معانی مفصلا یکی یکیش تخته تو کس راه میشست از گاه نو همین خاندندی برای شاه نو گاه به آهنگ موسیقی در سگاه و چارگاه و راستانگاه این گاه آمده گاه پسابند زمانه مثل صوفه و گاه پسابند مکان، مثل ورزشگاه و باشگاه گاه به معنی وقت هست اینجا تخت زمانه زمانی نداداش درنگ چه دان رنج حوشنگه با حوش <تصفيق> وقتی اجالی دستی زمانه محلقش ندارد و اون حوشنگ با همه اون حوش و با اون سنگ رو به سروش اصحانی بیت خیلی درجه اولی داره یاد کن البرسلان را تا سو روز مرگ سود ندهت حتشمت البرسلانی داشت زمانه زمانی ندادش درنگ شدان رنجه حوشنگه با حوش و سنگ اما سنگ سنگ از مصدر سنجیدن سنجیدن رو هم منی کشیدن. و سنگینه یعنی چیزی که با کشیدن قابل تشخیص به همین دلیل هم هست که سنگ براق افتادن میگن سنگ به دلیل اینکه فقط سقطه یعنی صحن خاصیت گیره یعنی اینکه وزن داره دردیجه فقط مزنش مشخصتنین خوشیت خیره وزنه ترازورا میگن سنگ به حال که فلزه به حال که مثلا چیز دیگه است ولی میگن سنگ دلیلش اینکه یعنی باش میشه سنجید و سنگین یعنی چیزی که در سنجش وزن داره خود سنجیدن و همون سنگیدن اتون جه و گه هم بدل میشه گفتم قبلا سنگ و سنج یکی شداندن جه و چنگه با هون شد سنگ یعنی و زمانه زمانی ولی بله. بپی... نه تا حد جهان با تو مهر نه نیز آشکارا نمایت چه میگه نه هرگز در دنیا با تو مهر خواهد ورزید <تصفيق> نه محصولش رو به تو نشون میدید پسر بود مر او را حوشنگ دا، یکی حوشنگ گران ماه تحمل دید من بیا آمد به تخت پدر برنشن کمر برمیان راست او را ببر کمر به اون معنی که فی حاله بشنیم کمربند اینی راید تماشه کمر میگفتن کمربند دوقات تازه کمر یعنی اون که حالا بشن کمر کمران میکنه اون میان کمر شوخ چه بندی به میانن در پنگ حافظ میگه که میان نداری و دارم عجب که هر ساعت میان مجمع خوبان کنیم میان داری نبندی زن میان ترفی کمروار اگر خود را بدینی در میانه کمر ببنی کمربنده و این از لوازم فادشاهی میگه کلاه و کمر مثل, مثل نگین و چوب دستی هر دوش از لحاظه میباز ستن کمر برمیان رسم او را ببند همه موبدا را از لاشگر بخوند به چربی چمایه ها بران جنین گفت رو امروز تخت و کلاه مرازی و دو تاج و گنج و سپا جهان از بدیها بشویم به رای پسان گه کنم در کی گرد پا در هر جای کوتح کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدید هران چیز کن در جهان سوزمند کنم آشکارا گشایم موبدان، موبد به روحانی دین زردوشت کلمه در اصل بوده موپت پت که در عوستایی پایی کی به عنی سید و سوال یعنی رئیس موحان این پت به صورت بعد در سپه یعنی رئیس سپاه در موبت یعنی رئیس مقام در هیربت یعنی رئیس آتش در کوفت یعنی رئیس خزانه و امثال اینا همه آمدی و آخواستار ها حادت که این بد بخونن که با اون یکی بد اشتوانش این خیلی موسک درست مثل که مثلا شیر درنده در رو بخونن شعیر برای این که با اون شیر خوراکی اشتوانش معنی نداره. انه میگه که موبدان را از لشکر کاست برعایت موبدان مسئولای ایدئولوژیک سپاه بودند یعنی اگر <متعاب> <متعاب> موبدان را از لشکر بخوام به چربی چه مایه سخن چرب سخن و چرب زبان یعنی زبان برای اینکه قضای چربونه هم باحت از گلو می پاییم حالا چربی تراثدار نداره گیمه سیاش گردن اینجا داره امریکا <تصفح> ولی قدیم کراکی چربونه هم خیلی, خیلی خوشمزه بود و خیلی چیز بود و چرب سخن و چرب زبانی و چرب سخنی و چرب دست به معنی ماهر در کارها و بعد چرب کشیدن در ترازو معنی این چیز به نخ خریدار رفتر رو چربوندن و سنگین کردن و چربی مفهوم خیلی خوب پشته هنیشه. به چربی چمایه سفنها برام چنین گفت که امروز تخت و کلاه پراز نیبد و پاج و گنج و سپاه جهان از بدیها بشویدم به رای پسان گفت کنم در کهی گرد پای پای گرد کردن یعنی تارزانو نشستن پاگیر کردن، تضاد در مقابل فاد دراز کردن این فاد دراز کردنه کارزانم پاگیر کردن و معمولا در مقامی ای که ایدن میخواد جا بیفته کارزانم میشینه یعنی جایی که دیگه جاشو میخواد بگیره بیش اون که بلند نشه اونجا کارزان میشینه اینه که میگه که اول رای و تدبیر دنیا از بدی ها میشویم بعد در پادچایی پا گرد میکنم به چارزنون می شما جهان از بدی ها بشویم به رای پسان گه کنم در کهی گرد پا به هر جایی که گه کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدید بود خواهم یعنی خواهم بود بود دیب و به سه دعوه و احوره و اینا رو که به تفصیل عرض کنم اینجا محنوز دیبان دشتن هستن و میگوید که تحمولیت هم تحمولیت دیبانده معروف تحمولیت دیوان. و تالا همچین حسابی خیدم دیوان نرسیدن حالا بعد میرسن به هر جا کوتح کنم دست دیب که من بود خواهم جهان راخدیم هم چیز که در جهان سوست من فرم آشکارا بشاید هم حالا میبینید که اینکه که ارز کردن اساطیر زندگی حالا میگه که ریسیدن و پشترشدن و پشترشدن و پشترشدن این حرفا رو اینجا در دوره شده, شده پس از پشت میشو بره پشت گریدو برید و به رشتن نهادن توز به کوشش از او کرد پوشش به جا به گفتردنی بود همو رهنما بس که بافتن هم میشه پوشیدنی باشه هم گفتردنی خشندتر و کلوکتر اونا فهم میکنه زیر پا به تویندگان هر که بود نیکرو خورش کرده شان سبزه و کاه و جو رمند ددان را همه بنگری گفتم ددان حیوان در رنده سیاه گوش یوز از نیان برد سیاه گوش یوز غیر از یوز, یوز پلنگ یا یوز فلنگ نوعی پلنگ کوچکه ولی یوز یه نوع حیوانی بوده که عاشق پنیر اولا قیلی صورت هم چیز میشه تحلی میشه تا هیمون از یکی برای بردن شکار با شکار میکرن سیاه هم نوع یوزه میگه از ددان وقتی که گشتید از همه رام به شوتر و بیشتر به درد بشر بخور سیاه گوش و یوزه برای که اینا به وسیط اینا نه میتونه برای شکار و از چابکی و تالاکی نه استفاده بکنه بایدگری بکیم بنابرای این به چاره بیاوردش از دشت کو بعد این تحصیم که یاگوش و یوز و چیز کنه به چاره چاره یعنی تدبیر چیله تدبیر به چاره بیاوردش از دست و دشت و کو به بند آمدند آنک دور از گروه میگه نا بردند یه جا حالا سه مکنین چون شمال بعد میگه میرسیم هم میبینید این بوده که اینو بکهشو می آوردن و نگه می داشتن و این کم کم احلی می شود و ترجیتش می از البته در که بعد مرغانم همین کار کردن و مرغان همون را که بود می اکساز تو باز و تو شاهینه گردن پراز بیا بر دو آموختنشان گرفت گرفتن معنی شروع کردن یک پولنطا پرسیدن گرفت یعنی شروع کرد خواندن گرفت یعنی شروع کرد بیاورد آموختنشان گره جهانی به دو موندند در چهره اشاره به طبیعت حیوانات مختلف راام کردن این کرده شد ماکیان خروس کجا بر خروس است جه زخم کوس بیاورد یک سر به مردم کشید تو نه افته همه سوپمندی از میونه برندگان دانخار از همه نزدیکر با بشر که احلی شد که هنوز هم و الحمدلله کمال لطفاً بشر بهش تازه حالا که ماشالله تو تو ماشین جوجه کشی و تو اون کفت اصلا تو زرش نمیتونه بلک کنید سر گیرن ما اینکه رسید بزنش اونجا دیگه اگه بیشتر روزه سرفه افتاد نداره همونجا بدونه اینکه بطبخ اصلا خروسش بتونه یه بار خونده باشه یا مار وار یه بار توخ باشه از جمه در سپر مارکت خدمت شد از خیلی لطف کرد و رو خروس رو از میونه انتخاب کرد و سایه رحمت شو به سر اونها این کرده شد ماکیان خروس کجا برکشد در شد گهه زخم کوس زخم یعنی ضربه آورد و یک سر به مردم کشید نفته همه مندی گذید خیلی لفت هم کرده بفرموز تاشان نوازند گرد نخوانندشان جب به آقای نر صداشون کنم بیان دونشون برنید تا چاخشن دیگه. یه که نجیب محبوب هست، رويزنده ای که نوبل گرفت، یه کتابی داره که دوران زندگی خودش رو فصح کرده. از شما من ترجمه فرانسش راستاً وقتی گرفته بودم آورده بودم. وقتی خونمون اونو خونه ما بزرگ بود و پدرش تاجری بود و هوشی داشته و مساطی داشته و هر زمان چند پسر داشته و چند دختر داشته و مادر بود و مادر خونه ترندشتی رو اداره می‌کرد. و اینا بعد میاد مادر من چیز همونه که مهرفانی و بود و چقدر و, و اینقدر دلش برای مردم و دلرحیم بود و چه بود چه بود چه بود چه بود و, چه بود و, چه بود و بعد میگه که برای از برای روینا وقتی می اومد این نوازش میکردی چه میکردی نه فقط در وقتی که هر روزی بعد اون دوتایی که قبول بگیره بعد میگرفت خیلی با دلسوزی میگفتش که انشالله که این چیز بهت این, این ضربه ای کنا بهت میزنه این آسوم بشنی و ارسونم که بیاورد بفرموند تاشون نوازن گرد نخوانندشون جزو آقای نرم چون این گفت این را نمایش کنید جهان آفرین را ستایش کنید که او داد من بردده در تا ستایش مرورا که به نونجا میگه خدر شد کنید که تو پشت چمسه بلغمار من نجوم مسخراتون بهم ره همه، همه حیوانات و رو همه رو در اختیار بشر و دستگاه دستگاه در این یک قدر است بر دده ما رو دستگاه داد یعنی بر حیوانات وحشی ما رو توانا و کی اینجا نکته بسیار مهم این است که من یه خاطره جالبم دارم برچان که خروش در ایران باستان حیوان مقدس محد ماهی میبوده حوال خصوص خروص سفید چلی ساچه در احادیث هم بسیار مفصل صحبت شده که چقدر خوبه که خروص سفید داشته باشن بعد این خروص دفتن که موقع نماز صحب میشه که خروصی در عرش که او بانگ میکنه و بانگ اون خروص رو خروصهای زنین هم میشنون و هم بانگ و مردم رو ایدار میکنن برای نماز و برای روزه و برای سایر اصائه ارز کنم که اینا رو از امام جعفر صادق و از اینها چیز کردن ربایت کردن خیلی گویا بینشیه و حسانی همه این ربایت رای جا همه قبول یه روز مرحوم فردا خدا رحمتش کنه خشواه بردن سر کلاس سر دوره دکتری، ایشون عرصداری در درست می دادن به ما خشواه بردن و پششونو کردن نوار روی رو رو تخته و تخته هم سه از سر اوتا همین مثل تخته نوشتن کردن آوسترایی اون تو نوشتن هم نوشتن نوشتن نوشتن, نوشتن، یه حد اون تایپ هست فقط ورش یه بعد یه خاصیه ورش تو بعد یه خاصی هست نصف وقتو اینا رو نوشتن اونم انگار دکتر بود دیگه بیمارچه بچه‌م هست اونا که نبود ما اینو کپی کردیم کپی کردیم این تموم شد مثلا نصف وقت پنجاه دیگه مثلا بعد این کار شد بعد 690 دقیقه تو ساعت ساعت ساعت بعد 45 تا 50